یک سال و هش ماهی می شود که دیگر به این یادداشتها نگاهی نکردم حالا از سر ملال و اندو فکر کردم آنها رو بخوانم برای سرگرمی یادداشتها تا جایی بود که آزمه هم شدم وای که این سطور آخر را با چه خیال نسبتا راحتی می نوشتم منظورم این است که چه اطمینانی به خود داشتم و چه امیدهای استواری در دل می‌پروردم مگر ذره تردید نسبت به خودم در وجودم بود کمی بیش از یک سال و نیم از آن زمان گذشته و احساس میکنم که از یک گدا حقیرترم گدا چیست گدایی که اهمیتی ندارد من خودم را به دست خود نابود کردم چیزی نمیشناسم که بتوانم وضع خودم را با آن مقایسه کنم هیچ رغبتی ندارم که زور روحیه در خود القا کنم در چون این وضعی هیچ چیز بیمعنی تر از القای روحیه نیست وای از این مردم از خود رازی وراجی که خرجی ندارد با چه خودپسندی سرشار از غروری داوری می کنند. اگر می که من وضع کنونی خود را تا چه پای زشت و آور احساس می کنم، زبانشان بر نمی گشت که به من درس زندگی و اخلاق بدهند آنها چه چیز ای دارند که به من بگویند که من خود ندانسته باشم و آیا به راستی مسئله مهم این است مسئله اینجاست که اگر این چرخ بخت یک دور دیگر میزد همه چیز عوض میشد و من یقین دارم که همین معلمان اخلاق اولین کسانی بودند که با خوش روی شوخی شوخی‌کنان نزد من میآمدند و به من تبریک میگفتند و مثل حالا روی از من بر نمی‌گرداندند اما من از همهشان بیزارم من حالا چه هستم؟ هیچ، صفر فردا چه خواهم شد؟ فردا ممکن است باز از میان مردگان برخیزم و زندگی نوعی شروع کنم و انسان را تا هنوز کاملا در من تباه نشده کشف کنم من آن روز به راستی به هامبورگ رفتم ولی بعدها باز به رولتنبورگ بازگشتم سپا و حتی به بادن رفتم در مقام پیش خدمت همراه هینتزه که مشاور عالی بود و مرد رزلی بود و اینجا پنج ماهی در خدمتش بودم این مربوط به زمانی است که تازه از زندان آزاد شده بودم آخر در رول به گناه وامی که توانایی پرداختش را نداشتم تالر به زندان افتاده بودم و نیکوکار ناشناسی مرا باز خریده و آزادم کرده بود آیا مستر آسلی بود یا پاولینا؟ هیچ نمیدانم اینقدر می دانم که بدهیم را داده بود و من آزاد شده بودم چه می توانستم بکنم؟ کجا داشتم بروم؟ این بود که ناچار به خدمت این هیند زه درآمدم. جوان سبکسر تن پروری بود کار نمی کرد که من می توانم به سه زبان حرف بزنم و بنویسم، اول به عنوان چیزی در ردیف منشی با مواجب ماهی سی گلدن به استخدامش درآمدم اما عاقبت به پیش خدمتیش تنزل کردم زیرا که دیگر توانایی داشتن منشی نداشت و حقوقم را تا حد مزد یک مستخدم پایین آورد از آنجا که جای دیگری نداشتم ناگزیر نزدش ماندم و به این شکل خودم را به دست خود به درجه نوکری فرود آوردم در خدمت او نه غذای کافی میخوردم و نمیتوانستم به قدر هم گلویم را تازه کنم در عوض ظرف پنج و هفتاد گلدن پسنداز کردم یک شب در بادن به او گفتم که میخواهم از او جدا شوم همان شب به کازینو رفتم، وای که قلبم با چه شدتی میتبید، اما هیجانم برای پول نبود، پول برای مرزشی نداشت، فقط دلم میخواست که روز بعد، امثال این هینتزه ها و سرپیش خدمتان و حسابداران هتلها و بانوان جاسنگین بادن از من صحبت کنند و داستان زندگیم را برای هم نقل کنند و از موفقیت من در حیرت افتند و تحسینم کنند و در برابر موفقیت درخشان تازم سرفرو دارند. اینها هم همه البته خوابها و افکار ای بیش نبود. اما کسی چه میدانست؟ چه بسا که پولینا را نیز می دیدم؟ اگر او را می‌دیدم همه چیز را برایش می‌گفتم و او می‌دید که من به راستی بالاتر از این یاو بازی‌های بختم و به این ضربه های انگشتش می‌خندم. پول نبود که برایم ارزشی داشت. یقین دارم که اگر باز پولی به دستم میآمد آن را پیش همسال بلانش میانداختم. باز به پاریس میرفتم و سه هفته‌ای سوار کالسکی می میشدم که خودم میخریدم و آن را به اسب‌های می‌بستم که به هزار فرانک تدارک میکردم. من خوب میدانم که لئیم نیستم حتی گمان میکنم که زیاده دست و دلبازم با وجود این با چه هیجانی و چه دللهور گوش به صدای کروپیه سپرده بودم که می گفت سی و یک قرمز تاق و پاس یا چهار سیا جفت و مانک با چه هرسی به میز بازی چشم دوختم که لیی های طلا و فردریک های طلا و تالرها روی آن ریخته میشد یا ستونک های سکه طلا تلا که مثل توده آتش می درخشید و پاروی کروپیه آنها را به این سو و آنسو می یا به بسته های بلند سکه های نقره که دور چرخ گردان قرار داشتند. هنوز به سالن بازی نرسیده به شنیدن صدای جرنگ جرنگ ریخت و پاش پول چیزی نمانده بود که به تشن افتم آن شب که افتاد گلدنم را به پای میز بازی آوردم شب کم نزیری بود. بازی هم را با ده گلدن شروع کردم و آن را رو روی پاس گذاشتم من نسبت به پاس پیشدابری خوشبینانی دارم باختم شست گلدن سکه نقره برایم باقی مانده بود بعد از کمی فکر صفر را اختیار کردم هر بار پنج گلدن روی سفر میگذاشتم، بعد از سه بازی سفر برنده شد چیزی نمانده بود که از خوشحالی سکته کنم صد و هفتاد و پنج گلدن به من دادند آنبار که صد هزار گلدن برده بودم اینقدر خوشحال نشده بودم فورا صد گلدن روی قرمز گذاشتم بردم هر دویست گلدن را رو باز روی قرمز گذاشتم قرمز برنده شد روی هم هزار و هفتصد گلدن در دست داشتم این پول را در مدتی کمتر از پنج دقیقه به دست آورده بودم در اینجور لحظات شوربختی های گذشته همه از یاد می روند من این را با به بازی گذاشتن بیش از جان خود به دست آورده بودم همه چیزم را به بازی گذاشته بودم و باز در میان آدم سرفراز بودم در هتلی اتاقی گرفتم و در را بر روی خود بستم و سه ساعت به شماردن پولهایم نشستم صبح گام بیداری دیگر پیش خدمت نبودم تصمیم گرفتم که همان روز به هامبورگ بروم در این شهر نوکری نکرده و به زندان هم نرفته بودم نیم ساعت پیش از حرکت قطار به کازینو رفتم و دوبار بازی کردم فقط دوبار، بار نه بیشتر و پانصد فلورین باختم اما عاقبت به هامبورگ رسیدم حالا یک ماه است که اینجایم ساعت‌هایم در دلهرهی دائمی می‌گذرد مبلغ بازی‌هایم بسیار ناچیز است و مدام در انتظار حادثه‌ای هستم پیوسته حساب می‌کنم و روزهای تمام پشت میز بازی می‌گذرانم و به میز و بازی چرخ چشم می‌دوزم حتی شبها در خواب جز بازی کاری نمیکنم انگاری سنگ شده در یک جور لجن فرو رفته از احساسم هنگام برخوردم با مستر رااصلی به این نتیجه رسیدم. ما دیگر یکدیگر را ندیده بودیم و به تصادف به هم برخوردیم و اینک شرح ماجرا در با قدم میزدم و حساب میکردم که جز پنجاه گلدن برایم نمانده است از این گذشته. حساب هتل را که اتاق کوچکی در آن داشتم تا دو روز پیش تصویه کرده بودم به این ترتیب می توانستم فقط یک بار دیگر سری به کازینو بزنم و اگر چیزکی بردم می توانستم به بازی ادامه دهم و اگر باختم در صورتی که خانواده روسی که معلم خصوصی یا مراقبی برای بچه هاشان بخواهن نیاوَم ناچار باز اربابی پیدا کنم و پیش خدمتش بشدم. سر به این افکار گرم داشتم و گردش هر روزه خود را این بار در پارک و جنگل پرنس نشین مجاور می کردم. گاهی چهار ساعتی راه میرفتم و خسته و گرسنه به هامبورگ باز میگشتم. همین که از باغ به پارک وارد شدم، ناگهان مستر آستی را روی نیمکتی دیدم. اول او بود که مرا دید و صدایم کرد. کنارش نشستم. احساس کردم که کمی سرسنگین است و فورا جلوی ابراز شعف خود را گرفتم. وگن از دیدنش فوق‌العاده خوشحال شده بودم. گفت، خب، پس شما اینجایید، می دانستم که شما را اینجا خواهم دید، به خودتان زحمت ندهید که آنچه بر سرتان آمده برایم تعریف کنید، خبرش را دارم، همه چیز را میدانم از هرچه در این یک سال و هشت ماه برایتان اتفاق افتاده، خبر دارم گفتم، پس شما در بند حال و روز دوستان قدیمتان هستید و از کارو بارشان خبر دارید، چه خوب که دوستانتان را فراموش نمی کنید. سببر کنید ببینم فکری به خاطرم رسید شما نبودید که من را از زندان روتنبور خلاص کردید؟ گفتن شخص ناشناسی مرا بازخریده است؟ نه، نه من نبودم که شما را از زندان رولتنبورگ آزاد کردم ولی میدانم که برای دویست گلدنی که نتوانستید بپردازید بازداشت شده بودید. پس باید خبر داشته باشید که چه کسی مرا آزاد کرده؟ نه نمیتوانم بگویم که میدانم که چه کسی آزادتان کرده؟ خیلی عجیب است من اینجا از روسها کسی را رو نمی شناسم. تازه روسها هم بعید است که برای آزاد کردن یک هموطن زندانی پولی مایه بگذارند در روسیه چرا؟ ارتدکس گاهی برادران دینی خود را از زندان آزاد می کنند. من فکر می کردم که یک انگلیسی دیوانه نیکوکاری که می خواست کار عجیبی بکند مرا باز خریده است مستر آسلی با تعجب مرا تماشا می کرد لابد انتظار داشت که مرا را قصدار و درمانده بازیابد با لحنی ناخوشاین گفت در هر حال خیلی خوشحالم که میبینم استقلال روحی و حتی شادمانی خودتان را باز به دست آورده اید من خندیدم و گفتم یعنی ته دلتان از غیز دندان به هم میسایید که میبینید درمانده و ذلیل نیستم؟ او اول منظورم را نفهمید اما بعد وقتی معنی حرفم را فهمید خندید گفت من از این حرفهای شما خوشم می اگد. از این حرفها میفهمم که شما همان دوست زیرک و احساساتی و در عین حال گستاخ قدیمی هستید. فقط روزهاییند که میتوانند این همه سفات متناقض را در خود جمع داشته باشند. بله، شما حق دارید. آدمیزار دوست دارد که دوست صمیمی خود را پیش خود خار ببیند. دوستی اغلب بر پایه حقارت حریف استوار است. این یک حقیقت قدیمی است که بر اشخاص زیرک پوشیده نیست اما در حال حاضر صادقانه به شما اطمینان می دهم که سمیمان خوشحالم که شما قمگین نیستید ببینم نمی دست از بازی بردارید؟ وای گور پدر بازی همین حالا حاضرم ترکش کنم فقط فقط همینقدر که باخت هاتان را جبران کنید تا آخرش را خاندم لازم نیست جمعه تان را تمام کنید این حرف را فکر نکرده زدید بنابراین حقیقت است. حالا بگویید ببینم غیر از بازی کار دیگری نمی کنید؟ نه هیچ کار داشت مرا امتحان می کرد من هیچ نمی دانستم. حتی به روزنامه ها نگاهی نمیانداختم اما و مدت بود که کتابی باز نکرده بودم گفت دلتان سنگ شده نه فقط از زندگی روی گردانی نه فقط به مصالح خود و جامعه تنبی اهتمام شده اید نه فقط وظایف خود را در مقام شهروند و در قبال رفقای خود انکار کرده اید چون همیشه دوستان با وفایی داشته اید و دیگر جز برد در بازی هدفی ندارید بلکه حتی به خاطرات خود پشت کرده اید من لحظه های پر عمق و التها به زندگی شما را به یاد دارم من یقین دارم که شما بهترین احساس های آن زمان خود را فراموش کرده اید امروز رویاهای شما و مهمترین آرزوتان از تاق و جفت یا سرخ و سیاه و دوازده شماره میانی و از اینجور جور ها تجاوز نمی کند. من به این یقین دارم من با آقای تلخی و حتی خشم فریاد زدم بس از دیگر مثل اصلی. خواهش می خواهش می این چیزها را به یاد من نیاورید بدانید که هیچ چیز دقیقا هیچ چیز را فراموش نکردم فقط موقتاً این چیزها حتی خاطراتم را از ذهن بیرون راندم. موقتا تا وقتی که وضع خودم را از پایه تغییر دهم و بر اساسی استوار بازگردانم. آن وقت، آن وقت شما خواهید دید که از میان مرده ها برخواهم خواست. گفت، تا ده سال دیگر همینجا خواهید ماند. حاضرم شرط ببندم که اگر زنده باشم، این حرفم را ده سال دیگر به یادتان بیاورم. همینجا، روی همین نیمکت. حرفش را بریدم و گفتم خوب کافی است و برای اینکه به شما ثابت کنم که اینقدر که شما خیال می‌کنید فراموشکار نیستم اجازه بدهید بپرسم میز پولینا حالا کجاست اگر شما نبودید که آزادی مرا باز خریدید باید او بوده باشد از همان وقتی گر هیچ خبری از او ندارم او نه نه گمان نمی نمی‌کنم که او بوده که آزادی شما را باز خریده او حالا در سوئیس است و با لحن بسیار قاطع ادامه داد و شما لطف کنید و درباره میسپولینا از من هیچ نپرسید. من بیان که بخواهم با خنده گفتم پس معلوم می شود که شما را هم سخت آزرده. میس پاولینا از همه کسانی که بسیار در خوره احترامند انسان و ارجمندتر است. ولی تکرار میکنم که بی نهایت لطف می کنید که اصلا درباره او چیزی نپرسید. شما هرگز او را نشناخده اید و شنیدن اسم او را از زبان شما اهانتی می شمارم بر هر آنچه برای من بیش از هر چیز پاک و منزه است. آه پس اینطور ولی شما اشتباه می کنید فکرش را بکنید من با شما از چه چیز غیر از او می توانم حرف بزنم ما خاطری مشترک دیگری نداریم ولی خیالتان آسوده باشد من هیچ میلی به دانستن روابط مهرمانی شما ندارم من فقط میخوام وضع بگوییم ظاهری او را بدانم وضع غیر عاطفی کنونی او را و این را با دو کلمه می شود گفت بسیار خوب به شرطی که به همین دو کلمه اکتفا کنید میزفولینا مدتها بیمار بود حالا هم تندرستی خود را کاملا باز نیافته است مدتی در شمال انگلستان با مادر و خواهر من زندگی می کرد شش ماه پیش مادر بزرگش یادتان هست همان پیرزن دیوانه مرد و هفت هزار پوند برای شخص او به ارث گذاشت میس پولینا حالا با خانواده خواهر من که شوهر کرده سفر میکند برادر و خواهر کوچکش که با میراسی که مادربزرگ برایشان گذاشته احتیاج مالی به کسی ندارند در لندن درس میخوانند ناپدری او همان ژنرال یک ماه پیش در پاریس سکته کرد و مرد مدمزل بلانش با او به مهربانی رفتار کرده بود اما توانسته بود. آنچه را که از مادر بزرگ به او رسیده بود، از چنگش بیرون بکشد. و این تمامی ماجرا بود. و دوگریو او هم در سوئیس سفر نمی کند؟ نه، دوگریو در سوئیس سفر نمی کند و من خبر ندارم کجاست. از این گذشته، یک بار به شما هشدار می دهم و حتی اختار می کنم و امیدوارم که هشدار مرا فراموش نکنید و از اینجور جور کنایه های شرماور پریز کنید. وگرنه؟ حسابتان با شخص من خواهد بود. چطور؟ یعنی با وجود سابقه دوستی قدیمی ما؟ بله، با وجود سابقه دوستی قدیمی ما. صد بار و هزار بار عذر می خواهم، مستر راسلی، ولی اجازه بدهید در حرف من هیچ چیز اهانتآمیز و شرماوری نبود. من میز پالینا را به هیچ گناه یا لغزشی متهم نکردم از این گذشته. مستر راسلی رابطه یک مرد فرانسوی و یک دوشیزه روس به طور کلی چیزی است که نه شما می توانید به درستی روشن کنید یا بفهمید نه من اگر نام دوگریو را با اسم دیگری همراه نکنید از شما می خواستم توضیح بدهید که منظورتان از عبارت یک فرانسوی و یک دوشیزه روس چیست چه رابطه‌ای میان این دو آدم وجود دارد چرا درست یک فرانسوی و یک دوشیزه روس خب می بینید شما به این مسئله بی علاقه نیستید، ولی این داستان درازی است. برای سردرآوردن از مطلب باید قبلا خیلی چیزهای دیگر را دانست. از این گذشته، مسئله گرچه به نظر اول مزهک می نماید. بسیار مهم است. صفت فرانسوی مفهوم کامل و پیچیده و پیراسته است. شما در مقام یک انگلیسی شاید به این حرف موافق نباشید. من هم در مقام یک روز دست کم شاید از سر حسد با این قول موافق نیستم اما عقیده دوشی ما دور نیست که با عقیده ما هم راستا نباشد شما ممکنه سبک نگارش راسین را کج و کله شکسته بسته و غیر طبیعی و بزک کرده و عطر زده به و حتی میلی به خواندن نمایش نداشته باشید من هم با شما موافقم و حتی آنها را از دیدگاهی مزهک میدانم ولی مستر نوشته هایش زیباست. و از همه مهمتر اینکه شما و من بخواهیم یا نخواهیم راسین شاعر بزرگی است آنچه فرانسویان یا بهتر است بگوییم پاریسی ها شکل ملی خود مینامند زمانی در قالب ظریف و زیبایی پدید آمده که ما هنوز وحشی بودیم و رفتارمان از زمختی و نتراشیدگی به قرس میمانست انقلاب میراسخوار نجواب بود امروز حتی یک فرانسوی ساده و بیرنگ و بو و بیبرگ و نوا ممکن است رفتار و سکنات و سلیقه ها و حتی اندیشه های بسیار لطیف و ظریفی داشته باشد بیان که این کیفیات از تشخیص و اختیار و جانش سرچشمه گرفته باشد این خصوصیات همه از راه ارث به او رسیده است آنها خود ممکن است بسیار رزل و نادان باشند حالا جناب اصلی به شما میگویم که در دنیا موجودی خوشباورتر و صدیقتر از یک دوشیزه خوشقلب و باهوش و ساده دل روس نیست. امثال دوگریو در هر نقشی که بازی کنند و هر نقابی که بر چهره داشته باشند میتوانند دل یک دوشیزه روس را به آسانی آب خوردن تسخیر کنند. آنها مهره ماری با خود دارند و دوشیزگان ما این مار مهره زرافت و پیراستگی را روح آنها میپندارند. صورت طبیعی جان و دلشان آنها خیال نمی‌کنند که این صورت ظاهر و پوششی است که فرهنگ حامل آن بوده و آن را بر آنها پوشانده است. گرچه شما از این حرف من هیچ خوشتان نمی‌آید، اما باید بگویم که انگلیس ها اغلب سرد و نچسبند و از زرافت و برازندگی بهره‌ای ندارند و روزها نسبت به زیبایی حساسیت خاصی دارند و به شدت به آن دل می‌بندند. اما برای تشخیص زیبایی و نجابت روح و برازندگی شخصیت آزادی و استقلالی بسیار بیش از آنچه در زنهای ما و به طریق اولا در دوشی ما است و در همه حال تجربه بیشتر لازم است. میز پولینا ببخشید این اسم از دهانم جست مدت بسیار بسیار زیادی لازم داشت تا قضاوت کند و شما را به دوگریوی رزل ترجیح دهد او به شما ارج بسیار مینهد با شما دوست می شود در دلش را برایتان باز میکند اما این دل در اختیار دوگریوی رزل منفور و رباخار و زش سیرت است این حال از سر خودپسندی و می شود گفت یک دندگی مدتی طول میکشد زیرا این دوگریو روزی در نظرش با حاله نجابت یک مارکی ظریف و پیراسته و یک آزادمنش سرخورده درخشیده است که خواسته است به کمک خانواده او و ژنرال بشتابد و در این را به خاک سیاه نشسته است البته بعدها پرده از روی این تصویرها برداشته شده اما این صورت کری اهمیتی ندارد او خواهان دوگریوی نجیب و برازنده گذشته است هر از دوگریوی امروز متنفر است با حرارت بیشتری مشتاق دوگریوی گذشته است گرچه این دو گریو جز در صفحه خیال او وجود ندارد شما مستر اصلی کارخانه قند دارید بله من از شرکای کارخانه معروف لاول هستم خب میبینید از یک طرف یک قند ساز و از طرف دیگر آپالون بلودره این دو تصویر با هم سازگاری ندارند من که حتی قندساز نیستم و فقط یک قمارباز بینوایم که حتی به پیش خدمتیم افتادم و میز فولینا هم از این معنی بیخبر نیست چون پیداست که کارگاه تیزبین و دارد مستر راستی پس از آنکه اندکی فکر کرد با لحن سردی گفت شما این دریوری ها را سر قیز میگویید خاصان که حرفهاتان تازگی ندارد قبول دارم ولی دوست گران مایه. از غذا بدبختی اینجاست که این اتهامهای من همه هر قط کهنه و بیرنگ و سبک و کم مایه باشد، نماینده حقیقتند. من و شما سرمان بی کلاه مانده. مستر آسلی با صدای لرزان و چشمانی از شرار درخشان گفت، این حرفهای شما احمقانه و زشت و نفرت انگیز هست، شما ای آدم حق ناشناس، نالایق و حقیر و بدبخت، بدانید که من به خواهش او به هامبورگ آمدم تا شما را ببینم و با شما مفصل و صمیمانه حرف بزنم و از احساس و افکار و امیدهای شما و از آنچه از گذشته در خاطر شما مانده برای او خبر ببرم درشته درشت اشک از چشمانم سرازیر فریاد زدم راست میگویید ممکن است نمی توانستم از ریختن عشق خود داری کنم و این اولین بار در عمرم بود بله بدبخت او شما را دوست داشت من می توانم این راز را برای شما فاش کنم چون شما دیگر مرده اید آن بتر که اگر هم بگویم که هنوز هم شما را دوست دارد شما نمی توانید خود را از اینجا واکنید شما اینجا ماندنی هستید شما خود را خراب کرده اید شما توانایی هایی داشتید منش آتشینی داشتید، دل سیایی هم نداشتید. حتی می میتوانستید برای کشورتان که احتیاج بسیاری به آدم دارد مفید باشید، ولی اینجا ماندنی هستید و کارتان تمام شده است. به عقیده من روزها همه همین طورند. یا این کیفیت در نهادشان هست و آمادگی دارند که بر این شیب بیفتند. اگر گرفتار این چرخ بخت نشده بودید، در دام دیگری شبیه به آن افتادنی بودید. موارد استثنا بسیار کم است. شما اولین کسی نیستید که معنی کار را نمیفهمید اینجا صحبت روزها را نمی کنم ولی چرخ بخت قماری است که انگاری برای روزها درست شده شما تا امروز آدم شریفی بودید و ترجیح دادید نوکر باشید و دست به دزدی نزنید اما وقتی به آنچه در آینده ممکن است بر سرتان آید فکر میکنم میدرسم خب دیگر بس است خداحافظ شما باید جیبتان خالی باشد نه؟ بیایید. این دهلوی طلا بیش از این نمیدهم چون بی تردید همه را خواهید باخت. همین را بگیرید و به امان خدا. نه مستر آسلی. بعد از این حرف هایی که زده شد من... نه قبول کنید. من اطمینان دارم که شما هنوز آدم شریفی هستید. من این پول را در مقام یک دوست به یک دوست حقیقی میدهم. اگر اطمینان می داشتم که شما فورا قمار را کنار میگذارید و هامبورگ را ترک می کنید و به کشور خودتان میروید هزار لیره به شما می دادم. تا به آن کار تازه شروع کنید. اینکه به جای هزار لیره فقط دهلوی میدهم برای این است که در این لحظه هزار لیره و دهلوی برای شما یکیست. هرچه در جیب داشته باشید روی میز میگذارید بگیرید. خداحافظ. خب قبول می کنم. به شرطی که اجازه بدهید در مقام دوست رویتان را رو ببوسم. البته با کمال میل سمیمان روبوسی کردیم و او رفت ولی او اشتباه می کرد اگر من در قضاوت بر پولینا و دوگیری و تند و تلخ بودم و با سباکسری داوری کردم قضاوت او نسبت به روزها تند و تلخ از روی نادانی بود درباره خودم چیزی نمیگویم. البته البته در حال حاضر مسئله این نیست. اینها همه حرف است. حالان که باید تکان خورد کار کرد. حالا اصل کار سوئیس است. همین فردا. آه ای کاش می توانستم همین فردا حرکت کنم. دوباره زاده شوم، زنده شوم، باید با آنها ثابت کنم. باید که پولینا بداند که من هنوز می توانم یک آدم باشم مرد باشم فقط کافی است که اه... ولی خب حالا دیگر دیر شده ولی فردا چیزی به دلم برات شده جز این ممکن نیست من حالا پانزه لویی طلا دارم حالا که آن بار کار را با پانزه گلدن شروع کردم اگر احتیاط کنم یعنی ممکن است که من هنوز اینقدر بچه باشم یعنی من واقعا نمیفهمم که کارم دیگر تمام شده چرا نمیفهمم که مردم ولی چرا ممکن نباشد که دوباره زنده شوم بله کافی است که یک بار در زندگی محتاط باشم صبور باشم و همین کافی است کافی است که یک بار محکم باشم ظرف یک ساعت می توانم تقدیر را عوض کنم اصل کار همان منش آتشین است کافیز به خاطر آورم که هفت ماه پیش در رولتنبورگ بورگ پیش از آنکه آخرین دینارم را ببازم بر من چه گذشت وا، یک نمونه ی تصمیم بود همه چیزم را باخته بودم همه چیزم را از کازینو بیرون آمدم آن وقتی دیدم که یک گلدن تایجی به جلیغم مانده. گفتم آه باز هنوز می توانم غذایی بخورم اما صد قدم نرفته بودم که تصمیمم عوض شد برگشتم و یک گلدن را روی مانک گذاشتم بله خوب به یاد دارم روی مانک و جدا وقتی آدم در کشوری بیگانه دور از وطن و کسوکارش تنهاست و نمیداند که همان روز چه خواهد خورد و میخواهد آخرین گلدن خود را آخرینش را به خطر اندازد احساس عجیبی دارد اما خطر کردم و بردم و 20 دقیقه بعد با صد و هفتاد گلدن در جیب از کازینو بیرون آمدم. این یک واقعیت است گاهی آخرین گلدن چه کارها می کند اگر شکستم را پذیرفته بودم اگر جرأت تصمیم نمی داشتم چه شده بود؟ فردا، فردا همه چیز تمام خواهد شد